بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه اجمعين اما بعد بحث امروزمون امتداد بحث گذشته است یعنی تقالون بررسی که من داشتم بالا خیلی از مؤلفین هستن که بحث از هم دیگر جدا میکنند هرچند که بحث همون بحثه مثلا بحث امروزمون خب ما دو تا قول داشتیم یکی قول جبریه داشتیم یکی قول قدریه داشتیم آخرین قولی که ما داشتیم قول جبریه بود درسته الان این قولی که ما داریم قول سوم هم مثل قول جبریه است قول قبلی و بعد هم که در جلسه آینده خواهیم داشت بحث قول حالا اهل سنت یا قول صحیح که بخوام بگیم بعضی ها گفتن میثاق جدا کردن گفتن میثاق همون فطرته بعضی دیگر گفتن که نه اسلامه حالا این بحثش میگدریم برای جلسه آینده بحث امروز من خیلی زیاد طولانی نیست خیلی خلاصه هست انشاءالله سعی میکنیم که خلاصه هم در امتداد همون بحث قبلی استدالای جدیدی که دارن برای خودشون الله سعی میکنیم که پاسخ دو باشیم و پاسخ بدیم به شبهاتی که دارن تا اینکه در شبهات اهل بدعت یا بگیم مخالفین اهل سنتی حالا هرچی که اسمشو بخواهیم بذاریم قولهای مر درشو رو میخوام ببندیم و بریم به اون چیزی که صحیح و ثواب هست و شبهاتی که پیرامون اون عدله هست انشاءالله سعی میکنی پاسخ دو باشیم و جواب بدیم بر اعتراضات قول سوم اینه که گفتن فطرت اون چیزی هست که خداوند در انسان گذاشته از انکار و معرفت از کفر و ایمان اون چیزی که در ذات انسان خدا گذاشته کی کی کافره کی مؤمنه رزات انسان ها خداوند گذاشت خداوند جهنمی را مشخص کرده به اختیار مشخص این فطرتی فکری کرد به قول قبی همون یکی مثلا گفته قبی هست لیکن استدلالاتشون بعض از استدلالاتشون مثلا استدلال به قول قبی هست و بعضی الا قول های جدیدی دارن مثل اولیش استدلالشون به فرموده خداوند فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل anggش gذاشten لا تبدیل لخلق الله میگه خلقت انسان اون چیزی که خودمان در استان گذاشته شخصی که کافره دیگه غیر ممکنه که مسلمان بشه لا تبدیل لخلق الله شخصی که ممنه هم غیر ممکنه که کافر بشه همون چیزی که قبلا بوده خودمان نوشته حالا هر چقدر بیاد نماز بخونه روزه بگیره کافر کافره از همون اولی که خدا من و ایده خدا را بکن به ندمی بهورهیم هم از همون جا کافر بوده تا وقتی که بیمیره و بحث جهنمی بودنش یعنی انسان از همون اول از ابتدای خلقتش تا آخر خلقتش لا تبدیل لخلق الله خلق خدا من عوضه میشه آیا این تفسیرشون آیا این استنباتشون با توجه به این آیه درست یا نه اولا اینها این آیه را به معنی خبر گرفتن یعنی مثل این که خودمان داره خبر میده که در آینده کسی نمیتونه خلق خدا را عوض بکنه تبدیلش بکنه ولی جمهور ایمه مفسرین این آیه را به معنای نحی فهمیدن به معنای نحی فطرت الله انتی فطران ننس علیه ها لا تبديل لخلق لا, لا تبدل خلق الله دين الله این دینی که خداوند در شما گذاشته این خلق خدا خلق صحیح خدا این فطره صحیح را عوضش نکنید تبدیلش نکنید به چیز دیگر این ترجیح امام ابن جریر طبری است به معنای نهی نکنید لا تبديل ای لا تبدل و اینا لغت عربی زیاده و دلله و استشهاد به آیات و نمیدونم به ابیات عرب بحثش مفصل کلام بحثش نبیخوام باز بکنیم دو با این مسئله ما اگر بالفرز بگیریم که این لا تبدیل به معنای خبر هست بر حسب ظاهرش بر حسب ظاهرش و این که خلق خدا عوض نمیشه چوبونی ما میتونیم بفهمیم اگر بالفرز به معنای خبر بگیریم بدین صورت صورتیه بنده این نیست که بر غیر فطرت خلقت بشه فطرت الله التي فطر الناس عليها فطرتی که خداوند مردم را بر آن خلقت کرده لا تبديل لخلق الله این فطرتی که خداوند در شما ها گذاشته عوض نمیشه یعنی این فطرت خداشناسی و اسلامی که در ذات شماها هست اون فطرت صحیح نه به معنای اینکه فطرت برمیگرده به اسلام و ایمان نه فطرت برمیگرده به اون شناخت و معرفتی که خداوند به انسان ها داده این خبر به این منظوره نه به اون منظوره که اینها استنباط کردن مثلا ما در حدیثی که داریم رسول الله صلی الله علیه و سلام وقتی که مثال میزنن به اون حیوانی که به دنیا میاد. بهیمه. بسیل الله صلی اللہ علیه وسلم فطرت را به یک حیوانی تشبیح میکنه که سالمه. درسته؟ حیوانی که سالمه به دنیا میاد. و بعد در اون حیوان تغییغاتی انجام داده میشه. طبق همون دیتان وال آممرران هم فلا غير نه خلق الله من امرشون میکنم خلق خدا را عوض میکنه. خلق خدا را رو این عوض میکنن شخص سالم را گشش میبرند چش ما شکرور میکنن درسته؟ بعد این خلق عوض میشه. پس خلقت خدان ت این حیث که مفصل ایناه هست خلقت خداوم ثابت در تمام مخلوبات از عد خداوند. خلقته قدرن ثابت فطرته ثابت ما ها هستیم فاباهوا فابوه يهودان هو ينصرانه او يمجسانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا اينچنين ميزنند و بعد رحمك الله و بعد در اين آيه خداون نگفته كه فطرت تغيير پيدا نميكنه خداون در اين آيه لا تبدیل لخلق الله چه فرقی هست بین تبدیل و تغییر در حدیث ما داریم که چه پدر مادر تغییر میدن در خلق درست و در آیه داریم که این خلق تبدیل نمیشه تبدیل نمیشه عوض نمیشه یعنی نگاه بکنید خداوند در آیه نگفته که خلق خلقش و فطرتش تغییر پیدا نمیکنه. چون تبدیل تغییر یک چیز هست با جایگزینی بدلش مثلا به فرض من این موبایل را با این عوض می کنم. تبدیل می کنم. یعنی چی؟ تبدیل عوضه بدلی از دیگری هست ولی تغییر نه من این دگمه ها را می شکنم این تغییر شد. پس فرق بین تبدیل و تغییر تبدیل و تغییر این فطرتی که در نهاد انسان هست تبدیل نمیشه ولی تغییر درش ایجاد میشه مثل اون حیوانی که به دنیا میاد گوشش میبرن چشماش گور میکنن تغییراته اگر یک روزی بخواد بربگرده بگرده میتونه بر بگرده. اساسش عوض نمیشه لا تبدیل لخلق الله این خلق خدایی که در نفس انسان گذاشته در هیچ شخصی عوض نمیشه فهمیدید؟ پس این منظور این آیه هست و خداوند میخواد بگه که شما نمیتونید اساس این خلقت را عوض بکنید تنها کاری که میتونید بکنید یک تغییراتی در شکل و ظاهرش بدید فقط تغییرات در شکل و ظاهرشه و برسه in mafhoum manzuri ke ulama az shari'a misavama mo dar farmodey khoda wan faqam wajhaka lid-dini hanifa wa yasisi yureerum faqam wajhaka lid-dini hanifa madar ebtedai aye negah konim ke inchini aghaz mishe dastur be rasul allah sallallahu alaihi wa salam ke faqam wajhaka خداوند به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دستور میده که بر چی؟ بر فطرت اساسیش و اصلیش بر بگرده و بیسته درسته؟ پس این فطرتی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بهش دستور داده میشه این چیز محمود هست یا مزموم؟ چیز محمودی هست چیز خوبی هست؟ اگر قرار بود بر حسب معرفت و انکار سابق بود جهنمی بودن و بهشتی بودن سابق بود پس خداوند دستور به چی میده؟ دستور به کار بدی داره میده یعنی خداوند از کافر خواسته که کافر بشه و با باید کافر بشه درسته؟ اگر ما بخوام بگیریم طبق قول اینها بر حسب شناخت قبلی از کفر و ایمان پس شخص کافر کارش خوبه؟ چون در اینجا دستور داده میشه به رسول ها سلام به تمامی بشریت که بر آن چیزی که برش خلقت شدن استواری ببرزن در صورتی که چنین نیست که هر, چه هر شخصی که دلش خواست بر هر چیزی که میخواد مثلا رفت استواری بکنه و انجام بده چرا؟ چون خود در قرآن میگه در خود آیه قرآن داریم که خود من ان الله لا لَا يَعْمُرُ قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُر اگر ما حسب قرآن‌ها بگیریم که خداوند از اون‌ها خاصه کفر که باید کافر بشن پس خداوند دستور بفحشامون کرد داره در در قرآن میگه که محمد قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون الله ما لا تعلمون دارید نسبت می‌میرید اون چیزی که نمی‌دونید قل دستور داده عدالت پس این رد چیزی ابدا واضح است فهمیدین نه؟ گیج نشیدوا دوباره میگم اذن ما گفتیم قول جمهور مفسرین بر اینه که این آیه لا تبدیل به معنای نهی نه به معنای خبر دومم به فرض به معنای خبر اگر بگیم به معنای خبر منظور چی هست فطرت اصلی که انسان برش خلقت شده نه اون کفرگی قبلا یا کافری که قبلا مشخص شده کافر است. خبر بر اساس این اینکه اون اساس خلقت انسان عوض نمیشه نه اینکه اساس اون آن که قبلا نوشته عوض نمیشه. چون این اختیارش دست خود انسانه و خداوندم هیچ وقت دستور به فقشمون کرد نمیده و بحث تبدیل و تغییر کرده که چه فرقی با هم دیگر دارن. وهو توجه بحديث وهو زهشتك إستدوى الضوء من شون بفرمودي خذ بنده دائسوري أول عمران ويأشتر يسير وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها كفت النبوة وقلت اشخاص همه مردم تسلیم خدا هستند یا با کراهت یا با خواست خودشون و اشخاصی هم نمیخواهند پس انسان مجبوره اکراه درش هست توعن او کرها یعنی اکراهن و یا خواهد با خواست خودشو. پس اکراه هست جواب ما چی هست؟ آیا واقعا ما که مسلمان هستیم کسی ما را مجبور کرده که مسلمان بشیم از خودمان بگیریم مشکل اساسشم چیه هست؟ اساس انحرافشون در این است که بین تقدیرات شرعی و کونی نمیتوند تشریف بدن تقدیرات کونی اموری هست که لازم نیست خدا من داشته باشه خدا من خواسته خورشید دولار بکنه آیا خواسته خدا که بیاییم ما خورشید را بپرسی؟ نه. از ما نخواسته خرسه رو بفرستید. خواسته خرسه طول بکنه، ما ازش نمیدونم میزید بریم زیر آفتابو نمیدونم از دورش استفاده بکنیم ولی از ما خواسته رو بفرستید؟ از ما نخواسته. این خواسته کونی خدابنده، لازمی خواسته کونی محبت یک چیز نیست. اما خواسته شرعی خدابنده. چیزی که خداون بهش دستور میده، کاری که میخواد کاری که میخواد ما انجام بدیم مثل نماز خوندن هر روزی گرفته. خداوند دوست داره ما انجام بدیم. آلا خواه اون شخص انجام بده انجام نده خداوند از ما میخواد که ما نماز بخویم چه من و چه اون شخص هندوسی و چه اون شخص بودایی و چه اون شخص آلا چیه وسونیش فرق نمیکنه همه مخلوقات خداوند ازش نماز خواسته و یک تا قرص هم خواسته بریم بر میاد بگادید به همه اسلمت لاگو الا اینا بین گفتیم دو تا تقدیرات تقدیرات کونی و شرعی فرق ندادن و در این انحراف افتادن نگاه کنین در این آیه والله اصل من في السماوات والارض بحث التقدير الكوني است نطبق الشرع ان تسليم تسليمي است بر اساس اون چيزي كه از اونها روش خلقت شدن يعني الان شما اي كه اهل قشميد پدر مادر فلانى هستن شما چه بخواهيد چه نخواهيد مشيت خداون بود كه شما چنين باشيد تقدير كوني است الله خاه اون چیز مثلا برطرف خلقت ابلیس خدای من خواسته ابلیس باشه و ابلیس هم هست حالا چه به خوبی هاش چه به بدی هاش ابلیس خوبی داره ولی ابلیس خوبی داره اگه ابلیس نبود دیگه جهاد بود دیگه شما میفهمید خدا ما غفاره میدونید ته خدا رحمن و رحیمه جهاد تعریفامی شد دیگه هیچ چیزی زانا بود دیگه اصلا خدا رو نمیشناخت حالا همه این هم جوز حکمتهای خداوند در بحث قضا و قدر بحثش مفصله که انشالله بعدها بعد از اصمان صفات خواهد اومد لیکن اینجا به خاطر ربط بحثمون جمهور مفصلی بر همینن که این آیه به منظور تقدیرات کونی هست که خداوند با کلمه کنش فیکون کرده یعنی خواسته که بشه و شده حالا که چه مومنش چه کافرش تحت مشیعت کونی خداوند هست و نمیتونه مخالفت بکنه با تقدیرات خداوند مومن شخص مومن تسلیم امر خداست با قلب و قالبش و کافرم تسلیم عمر خداوند اکراهن یعنی اون شخص کافر نمیتونه نسبش عوض بکنه نمیتونه بندگیش عوض بکنه نمیتونه مخلوق بودن خودش عبز بکنه. ولهو اسلم من فی السماوات و رضا یعنی همه ای آن چیزی که در ها و زمین هستن تسلیم شده خداوندن. یعنی از آن خداوندن. چه بخوان چه نخوان. تو و کرها. چه بخواهید چه نخواهید شما مخلوقید. شما نمیتونید با اختیار خودتون از اساس خلقت خود خالج بشید. نبی این منظور که این اسلام اسلام شرعی است. این اسلام شرعی نیست این به معنای اسل... این و لهو اسلم به من منظور لغویش هست نه به منظور اصطلاحی اسلامی که از طرف خداوند اومده و پیامبرا را فرستاده و براش این نه این به منظور تسلیم امر کونی خداوند نه امر شرعیش دوم اقرار اول اقرار اولی که خداوند از ما گرفته و بید اخذر ربکم من بنی ادم من ظهورهم ذریتهم و شدوا علی انفسهم الا است بربکم اون اقرار آیه اکرام درش هست اینا میگن از همون اول اشخاصی مجبورا مؤمنن و اشخاصی مجبورا کافرند درسته با این آیه با توجه به والله اصلا و الارض با توجه به هر چنکی در اون موقع اصلا به زمین نیوسته اونها میگن که انسان مؤمن باید مؤمن بشه کافر باید کافر بشه خب ببخشید وقتی که در این آیه اشاره شده واید اخذا ربكم رب من بني ادم ذهورهم ذرياتهم اشهدهم على انفسهم الا استعبد ربكم آیه در اونجا اکراه بود یا همش تو بود همش توعب بود یه چیزی که خداوند حجتی در نفس بندگان گذاشت که با آن بتونن خدا را بشناسن هیچ اکراهی درش نبوده هیچ اکراهی درثها بوده اون چیزی که متابعن بوده خداوند اونجا خودش رو نشون میده به بندگانش و ازشون گواهی میگیره و این چیزا در نفسشون میذاره و اینم تفسیر این آیه با این منظور از عده‌ای از صحابه و همچنین تابعینه باید شده این خلاصه بحثمون هرچند که ما میتونیم خاتمه می بدیم این بحثمون با اینکه رسول الله صلی الله علیه در حدیث قدسی میفرمایند که خداوند میگوید انی می خلقت عبادی حنفا من وندیک راہ منافق دور از شر این با فطرت سالم خلق کرده کیا آوازشون کرده تعقیب deres داده ما احللت له شیطان اومد کی چی حرام کرده ول حلال بهشون کرده و سبب شده انسان سالمه حالا عدل بر سالم بودن انسان، مسلمان بودن انسان، خداشناس بودن انسان زیاده. ان شاء الله جزی بنده خواهیم گفت. عدل زیاده برای انسان که انسان سالمه اصل اساسش. حالا چه فرزند مؤمن باشه چه فرزند فرزنده کافر باشه خدا را می‌کنه بشناس. این حدیث کافی هست در دین ها. هرچند که ما اگر یادتون هست با توجه به با توجه به حدیث ما من مولوده الا يرد على الاطراء فما وهي هودان او يمجسان او ينصران اكو واجبون حديث ما مفسره بعد شون دارين هي چرا رساله سلسله مثال بهيوان ميزنن و چرا مثال تغيير و مسائلي كه درش بود قبلا بشاشه كردي كه الان ديگه نمیخوام اون خلاصه ي رد بر گوفي قبلي يا تكرار بكن اون رد قبلي هم ميشه بر اينها اضافه كرد هرچند ما در اينجا با يك حديث كل ش مباحثشونو برباد داريد این دو تا دلیل اصلیشونه. عدله دیگر هم استداد کردن که اصلا نیاز نیست که اصلا بررسی بشنه بررسی بشه و نیاز نیست که اصلا ما بخوام بحثش بکنیم. اینجا تا اینجا همین بحث کافی هست. انشالله بحث بعدی مود. بحث میثاقه و بحث اسلامه. هر دو تا بحث ها یکی هرچنکه بعض از علمان جداش میکنن. انشالله سعی میکنی جلسه گهنده. حاجی چانجلس شده از ما وقت می‌گیره چون از الرافهین گفت بعد اعتراضاتی که بر اون ادله نمی‌شه ان شاء الله بحث مفصله بعد باز بکنیم خب چند تا سوال هست سبحان الله و بحمد سبحان الله و محمد